یا همون عقیقه روز هفتم تولد کشته میشه، روز هفتم امروز که متولد شد حساب نمی کنید مگر اینکه قبل از نصف شب متولد میشه. یعنی قبل از سحرگاه اگر قبل از سحرگاه متولد شد که هیچی سا میشه اما اگر در روز متولد شد امروز حساب نمی کنید بعد از این روز هفتم گوسفندی کشته میشه، و این مستحب هست واجب نیست اگر شخصی فقیر است و نمیتونه بر او واجب نیست حالا برای دختر و پسر برای هر و تا ایکی هست هم برای دختر که هم برای پسر یکی قبلها ها امر دوتا بود اندوار این بی ایکی تنزل یافت برای پسر قبلا دوتا بود دوباره تنزل یافت و یکی شده